تربیت فرزندان خیلی مختصرا بی بگم که خلا وقت هم نیست اول این است که پدر و مادر در قبال فرزندان چندین وظیفه دارند تامین نفقه اونها وظیفه پدر و مادر است اسم درست اسلامی وظیفه پدر و مادر هست کشتن عقیقه وظیفه پدر و مادر است تا ورسه به سن 7 سالگی سال که رسید تعلیم احکام وزیف پدر مادر هست احکام اسلامی و تعلیم میدن. از سن هفت سالگی تا ده سالگی آمادگی تعلیم خیلی زیاده باید خوب اونها رسیدگی کنه تعلیم میدن. آرام آرام با نصیحت با ملاطفت تا ده سال تا ده سال اگر رسید باز اگر گوش نکرد تا دوزده سال بعد زده بشه و بعد از اونجایی وقت خواب باید ددا بشه ازدواج دادن هم پدر و مادر هست. وقتی ازدواج کردن حالا بعد ازدواج مستقل میشند و میرن. اما اگر ازدواج ندادن موقعیت فراهم بود پدر مادر مخالفت کردن اگر مرتکب گناه شدن گناه بر پدر مادر هست بعد از دو حالا ازدار میشند و میرن. رسیدگی کردن و همیشه به فرزندان بودن بعد ازدواج وزید پدر مادرین حالا در خونش ما عروس دارم بیا عروس او رو از عروس که اخلاق ات سرم چجوری هست؟ همیکار سهاب میکردن حضرت امر ابن آسمان رضی اللہ تعالیم هو میره پیش عروسش میپرسید که آغا چجوری هست؟ بعد میگو فاعا این آغا اکمالداریم که اصل ممانه روز شفگوز داره باهات میکنه. و اگر خونه شما داماد او از داماد بپرسید دخترم چجوری هست؟ هرگز رایت میکنه نمیکنه. میخواد عادل داشته باشه. و بعد از این در اعتقاد درست تا وفات. هنگام در اموالتان عدر کردن و درست تقسیم کردن وظیفه پدر مادر هست و قبل از وفات هم بر اونها دعا کردن همیشه دعا کردن ای خدا اینها را صالح بکن وظیفه پدر مادر هست اینها دعا باید بکنن و قبل از وفات از اونها آهد گرفتن که من دارم میرم شما چکار میکنی بر کدوم دین میمانید اعتقاد درست را اونها تحبید دادم هم وزیفه پدر مادر هست